سرت همه دانای فلک می داند، به موی و رگ برگ می داند، گیرم که به زر خرق را بفریبی با او چه کنی که یک به یک میداند. داند. سودازده را باده پر و بال بود، میبر روخ خاتون خرد و خال بود، ماه رمضان باده نخوردیم و برفت، باری شب عید ماه شوال بود. شب نیست که اقل در تهیار نشود و از گریه کنار من پر از دور نشود پر می نشود کاسه سر از سودا هر کاسه که سرنگون مبد پر نشود طبعا به نماز و روزه چون مائل شد گفتم که مراد کلیم حاصل شد افسوس که آن بزو به بادی بشکست و آن روزه به نیم جرئه باطل شد